بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلات و سلام علی شفیر النبیای و المرسلین و علی علیه و أصحابی اجمعین امّا بعد حضرت یوسف علیه الصلاة و السلام بعد از اینکه تحبیر خواب کردو و کسی که قرار بود از زندان نجات بیابد به او سفارش کر که یاد من را پیش پادشاہ بکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام متواصل شد به انسانی تاکش شفاعت بکند خداوند متعال هفت سال دیگر داخل زندان نگه داشت و اون شخص هم کلا فراموش کرد خود همین که فراموش کرد علامت این است حضرت یوسف علیه السلام و السلام پاک بود چون اگر پاک نمی بود وقتی که با یک مسئله کوچک الله رب العالمین تابیخ کردن پس در اونجا هم تابیخ شدیدتری نازل می شود هفت سال در زندان سختی های زندان مشاقات زندان حضرت یوسف علیه صلات و السلام را خیلی زیاد از زیاد شد داخل زندان بعد از هفت سال وقتی رسید که باید مصطفی علیه صلاته وسلام از زندان بیرون بی آین تبغی از روایات جبریل امین علیه صلاته آمد پیشه حضرت یوسف علیه صلاته و که حالا وقت خروج هست وقت رفتن به دنیای دیگر بیرون از زندان وقتی که وحی آمد و اطلاع یافت پادشاه خوابی دیده و خواب پادشاه سبب خروج حضرت یوسف علیه صلاة و سلاط از زندان شد. این خواب دو بار این خواب اومد یک بار خواب دید خودش خواب دید که بواسطه مشکلات و مصیبت‌ها شد سالها سال یوسف در مشاقات و مصائب گرفتار کرد یک بار خواب دی خواب دید که پادشاه خواب دید اما این دفعه خواب بواسطه نجات شد خواب خودش دیده بود که ظاهر خواب خوب بود، اما مشکلاتی رو آورد. بعدش که ظاهرش بد بود، اما باعث نجات حضرت يوسف عليه السلام شد. الله میفرمانت که وقال الملك، اني ارا صبا بقرات سمان يأكلهن صبا عجاف و صبا خضر خضر و اخرى یا ایوه المنه افتونی فی رویا یا انکونتو لرویا تعبیرون من خواد میبینم که هفتا گاو چاغ فربه این هفتارو رو هفتا گاو لاغر اینها رو میخورد دوباره هفت خوشه گندم سبز دیدم و هفت کوشه گندم خوشک ای در بانیان تعبیر خواب منو تعبیر کنید اگر شما علمی در تعبیر خواب دارید وقتی که حضرت یوسف علیه سلاط و واسلام در زندان بود و این خواب دیده شد خود اهل مجلس از تعبیر خواب عاجز آمدند. حالا ای خواب دید، پادشاه خواب دید که از یک رود خوش، از یک رودخانه رود خوشکیده هفت گاب چاغ بیروز شد و پشت سری هفت گاو، هفت گاو لاغر آمد و گاوهای لاغر، گاوهای چاغ خوردند و بعد از اون هفت خوشه سبز بودن که هفت تا خوشه خوش در اونها اومد اونها از بین بود فادشا وقتی این خواب دید نگران شد و نسبت به خوابش خیلی هم دیگه مصیر شد تعبیل خوابم چی هست به خاطر این ازرار رو جمع کرد خود نگرانیش در اصل اون کلیده باز شدن زندان یوسف بود چون وقتی خواب مال مصر برای تعبیرش شد معبرین رو جمع کرد به حالا بیایید و خوابو تعبیر کنید وقتی معبرین آمدند و تعبیر خواب قال ازغاص و حلا این خوابهای های پراکنديان پراکنده هستن اما ها اما تعبیر بِتَأْوِيلِ أَهْلَن بِعَالِمِين خوابی که پراکنده باشه ما این این هر آور نمیدونیم. از غازش از غاص در اصل همین خشکخاش شرک میگه. در چاله‌ی خشکخاش شرک جمع میشینی از غاص. و این خوابی تو دیدی یعنی داخل خوابی تو خیلی غاتی هست، مشکلاتی داره. این خواب خوابی شا... صاف نیست. و چنی خوابه هم داره تعبیر نیستن. اب حدیث داره اینکه بعضی خوابها شیطانی ها شیطانی بعضی خوابها رحمانی ها رحمانی هست اینکه هست اما انجاک وقتی انها گفتن که خواب اینجوری مادی بی و خواب را به این صورت صدا یعنی خواب را تقسیم کردن تقسیم اول گفتن خواب دونو هست یه خواب خوب یه خواب یه خواب بد و بعد اون که kiase از غاصن خوابهای داخل اون خیلی پیچیدگی باشه منظور و قیام خواب واضح نباشه به خاطرین گفت که این خواب داخل پیچیدگی هست ما این نوع دوم خواب نمیدونیم حالا وقتی که نوع دوم خواب اومد و اینو هم باید خیلی شخصی خبره با تعبیر کنه یعنی از اون پیچیدگی ها از خش و بیرون میکنه و خواب و تعبیر کنید کار شخص خیبره باید باشه کار هر کسی نیست بخاطی انها ما خ... این نور رو ما تعبیر شده می دونیم انها چرا اینجوری کردن ایلتی که اینها به این ای صورت تعبیر کردن یعنی گویا خواستا که پادشاه رو از نگرانی بیرون کنن یعنی خواستا که کمکی بکنن این چیزی نیست انها دیگه قابل تعبیر نیستن این اول بخاطرین بود اما دو این بود که گفت علم تعبیر خواب علم بسیار عمیقی هست کسی هم بار نمی نمیتونه تسلط داشته باشه یا علم را احاطه بکنه انجا الله رب العالمین فادشه رو گفت که وقال ملک پادشاه ذکر کرد در حالی که کفار تعظیم نمیشن. این کافری این بود اینها بعضین میره ریان ابن ولید بودی پادشاه. اصالت اینها کجای بود؟ اصالت اینها در اصل بعضی میگن اینها کنانی بودن این پادشا چوپانا از اونجا اومده بودن بعض اینجور تعبیر می و بعض حکسوس بود اینها بیر حال و اصل اینها در اصل از عربهای و کنان بود از اون عربها بود که اومده مصر. و قدرت را گرفته بوده و وقتی که اینجا هم به صلاح آمد اینجا الله رب العالمین به ملک ذکر کرد پادشاه رو چون کسی که در یک قومی شخص انسان بزرگی واشی ولو هم کافر به خاطر احترام قومیت بعد او رو حفظ کرد یعنی انجا درستی هست اخلاق و ادبیات قومی و منطق یه چیزی دیگر هست، ایمان چیزی دیگر هست. نباید منطق را و اخلاق انسانی را همیشه غاتی بعضی مسائل کرد. اینجا الله رب آیه فایده و قائل این پادشاه کافر و پادشاه کسی مالک واشه. و جای نبی اسلام وسلاه الله و علیه و سلم وقتی که نامی نویشتن نوشتن برای امپراتوری روم، اونجا نوشتن که من محمد رسول الله من محمد ابن عبد الله الی حراق العظیم الروم از طرف محمد و رسول الله به طرف پادشاه بزرگ رومی ها اونجا گفتن پا که پاشا فرمودن که بزرگ روم پس اگر کسی در قومی بزرگ بود والا هم کافر واشه باید ادب و اورا، احترام و اورا رعایت بکنه در چارت بر صورتی که خلاف احکام شر چیزی نواشه شخصی پیش نبی مکررم اسلام آمدن فرموده که بیت اخول اشیره خیلی آدم بدی است، اما قذیرائیش کرد با اخلاق و قول پیش اومد و جایدیگه هم حدیث داریم که کسان دیگر درای مقامی هستن افترام انها رعایت بکنید حسب نابره. اینجا الله رب العالمین دست داری بیدن که از این کلمه که دین و ایمان نباید باعث بشه که انسان بد اخلاق بشه چون مسلماندی حالا باید من بد اخلاقی بکنم یا بد بیراه بگم اینها رو الله رب العالمین ناهی کردن حالا وقتی که خواب اونجا در دربار و در اون قصر پادشاه بیان شد و پادشاه وقتی بیان که اونها گفتن ما نمی بعد اون کسی که نجات یافت بود از اون دو نفر دو نفر بودن که از اونها نجات یافته بود و رفت بیرون این آقا بعد از مدتی حالا یادش اومده و قال نجا منهما مِنْهُمَا بعد بَعْدَ انا اَنَا وَنَبْلِكُ بِتَابِیلِهِ فَأَسْتِلُونَ اون کسی که از اون دو نفر که نجات یافته بود بعد از مدتی یادش اومده گلت که من تعبیر خواب نوی آورم فا ارسیلون منو بفرستید اینجا الله رب العالی مختصد و اینجا آوردن اما وقتی که تابیر معبرین خواب چرا میگن تا معبر یا این در اصل این کسی عبور بیکن در زیرش اونو چرخش میده تابیرشو بینقدر پیدا بکنه بعد از اون اینها وقتی که از تعبیر خواب آجز اومده. یکی همین ساقی همین شرابی که با شراب نوچانه همونجا نشستی و پرید در بین مردم بلند شد پرید بر زندوها جروع پادشاه نشست بعد بفت که من این خوابو میتونم تعبیر کنم و میتونم پیان خوابو برای شما بیاورم و ذکر بعد امتین در اطوی ذکر بعد امتین اینجا ادغام صورت گرفته و ذکر بعد امتیم بعد از مدتی بعد از زمانیم چند سال هفت سال بعد از اون واقع تازه یادشون او این خواب پس خواب من تعبیر کرد من بیرون اومدم و اینجا هم دیگه میتونم تعبیر خوابو بیاورم بعد پادشاه گفت که شخصی هست که تعبیر میکنه پس منو بفرستید پیشش سال که من تعبیر خوابو بیاورم زندان در اصل اون زندانی که یوسف علیه السلام در اون زندان بود اون زندان بیرون از شهر بود در خود شهر نبود بعضی میگن داخل شهر بود و بعضی میگن که نه زندان در شهری حضرت زندان یوسف علیه السلام در اون شهری نبود که پادشاه زندگی بیکرد به خاطر گفت که حالا منو بفرستی تا برم اونجا و خبرشو بیاورم فاصله داشت از اون و بعضی میگن این زندان در کنار رود نیل بود در کنار رود نیل این زندان واقعی بود به هر حال چون که پادشا بر خوابش مسیر بود و تعبیر خوابشو میخواست اینجا انگیزه فرستادن بیشتر شد راحت میتونست اون اونو بفرست، چون که دنبال خوابش بود و تعبیر خواب و میخواست تو چیزی بسیار نگاران کننده در خواب دیده بود حالا این آقا اجازه گرفت اجازه گریب و رفت پیش پادشاه برای تعبیر خواهد وقتی که رفت اونجا به دروان و زندان و در زندان باز شد پیش حضرت یوسف علیه صلاة و سلام رفت و بعد گفت یوسف ایوه صدیقی یوسف اس راست رو صدا قد داوی تو افتن فی سبع بقراب سیمان یا کل هن سبع اجاف ما رو خبر بده در مورد هفت گاو چاق خونه ها رو هفت گاو لاغر اینها رو میخورند و صحب صنبلات خود را و اخر یابی سات لعلی ارجو و هفت خوشه گندم خشک که بر هفت خوشه گندوم سبز ها غلبه میکنند حالا تعبیر این خواب و این خبرشو به من بده چرا لعلی شاید کم من بر بگرده کجا ال نان علممون تا این مردم هم بداننلی ارجل الناس علممون خبر خبرشو بینم پیش مردم میبرم تا اونها ها بدونن چه علم تو را بدونن صداقت تو را بدونن به تو رو اینها درک بکنند وقتی که اونجا رسید الله ادب و نگاه کن. این هم مسلمان نشده بود. اول که اینجاگو یوسف ای یوحس صدیق یوسف الراسل چون یوسف علیه السلام اینج تعبیر کردین خوابش را چون خوابو تعبیر کردگو حالا صداقت یوسف علیه السلام بر اینها به اسوات رسیده بود وقتی که صداقت به اسوات رسیده بود قطعا اینجا باید لفظ صدیق ختمی کنه و دو اینجا دست بعدی این است که الله رب العالمین داره این درس رو میدن که وقتی کسی سائل هست داره سوال میکنه سوال کننده باید عدد سوال رو داشته باشه این شخص کافری بود پیش مسلمانی آمد پیش یک مؤمن و پیغمبر آمد اما چه گفت؟ یوسف ایو هست دیگر اینجا این منطق سوال هست اگر سائل هر کی باشه اما وقت داره سوال میکنه سائل اینجا محتاج هست اون مجی مسئول اینجا محتاج نیست پس ادب همین است که باید ادب را رعایت بونید و سوال از او بپرسه و دو این است که ایو صدیق بکار کارون اینجا برای علم آمد برای کسب علم در مورد تعبیر خواب اومد کسی که از کسی سوال میکنه و کسی که در مورد کسی تحقیق میکنه در از اون علم حاصل میکنه باید اول او را تصدیق بکنه اگر تصدیق نکرده چگونه علمش عمل میکنه و چگونه از اون علم حاصل میکنه باید اول این بدونه که کسی که من پیشش علم حاصل میکنم این شخصی است ثوانا میتونه این مشکل منو حل بکنه اول این ادب اگر اشتباهی میتونه اما ادب همین است که باید به این صورت جلو بره او کارشو اونجا پیش ببره، اما اینجا این آغاز هر سوالو جوری دیگر مطرح کرد. اونجا گفت که نبب اینا به تابیله. قبلا آقا خواب دیده بود که من دارم شراب درست میکنم، اونجا گفت نبب اینا به تابیله. تابیله خواب ما رو بگو. خیلی مدعی بود اونجا، طلبگار بود. اما اینجا چی میگه که نه به ما خبر بده. این روال کار و منطق تغییر کرد از کجا تغییر کرد منطق تغییر کرد از علمش از طلاغتش وقتی فهمید که این صدیق دیق هست توان من هست و فهمید که اینجا من نیاز دارم به این منطقش تغییر کرد با کلامی بسیار متغیرهای نرم از حضرت يوسف علیه حصلات و سلام سوال پرسید و بعد این گفت افهنا م گفت که فتیلی، گفت به ما خبر بده نگفت به من خبر بده در حالی که اینجا خودش تنها بود اما چرا به ما خبر بده چون خبر مال خودش نبود خواه مال خودش نبود و باید پیش فادشاه میرفت و در جلوی معبدیرین دیگر اینو تعریف میکم به خاطر این گفت که افتنا به ما در این مورد خبر بده و بعد این است که روال کاری که اومد حضرت یوسف علیه صلات و سلام بعد از دون دیگه خوابش رو گفت که چنین خواهی ما دیده دید شده و تعبیرش چگونه هست حالا با تعبیر شبه بو من میخم یعنی گویا که من میخم اونجا برم اون علم تر رو توانمندی تو را و تعبیر رو بنا به اسواح درسونم تا اونها بدونن ان که انسان توانمندی داخل زندان هست یا یعنی گویا که از این جمله خاص به این چیز اشاره بکنه یعنی اون معفاتی که من قبلا کردم نتونستم کاری بکنم سفارش نکردم حالا دیگه میره خبر میدم یعنی اون موافات قبلی که قبلا سفارش کردی حالا تعبیر بگو تا همین تعبیر تو سبب نجات بشه یعنی علم تو پس نگاه نجات چیزی که باعث نجات داره میشه این باعث نجات علم هست سفارشات نبودم چیزی که یوسف علیه السلام را از زندان بیرون کرد <تصفيق> و علم حضرت یوسف علیه السلام توان من دیه حضرت یوسف علیه السلام نستد به تعبیر خواب بود بعد تعبیر خواب و گفر بودن که قال تزرعون سبع سنین دعوا بله تعبیر میخوایید هفت سال کار میکنین مرتب یعنی بدون توقف هفت سال کار میکنین و سم زروه دوارین بزای کجا فی سوم گلی الا قلیل مِمَّا تَعْقُلُو مگر خیلی چیز دیمان اندیکی کمی خوری انوار بیرون کنید الباقی رو بیرون نمی کنید حضرت یوسف علیه صلاة و السلام قبل از اینکه تعبیر خواب و بفرمایه نگاه من اخلاق نبوبه اینجا توبیخش نکرد ها دوباره حال امروز که کارداری اومدی پیش من اون روز من فراموش خواب تعبیر کردم در ایفت که اللہ تعالیم رو نگاه نکردی اما انجوی نفرم بودم منت نگذاشتن چرا؟ شون که یوسف علیه السلام نبی بود نبی با علم رب دیگران برسانه اینست نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم می که من سوئل ان علم فکتمه ارجم بلجان من النار یوم القیامه اگر کسی از علمی پرسیده شد و علمه و میدونس فکتمه الرب گوشانید و جواب سوال را نداد و لجما بلجام یوم القیام روز قیامت با یک لگام آتشین این لگام کرده میشه و بعد این است که انبیا علیهم الصلاۃ والسلام خیرخواه امت و انسانیت بودند و خیرخواه میشه باید خیرخواهی شو انجام بده حضرت یوسف علیه صلات و بدون از این که منتی بزار عجب گذاشته و توبیخی بکنی آه این دوباره بعد از هفت سال من فراموش کردی برو حالا تعبیر نمیکنم نه اینجوری نفرمودم و با اخلاق خیلی گرد و خیلی با مهربانی تعبیر خوابو کرد اما تعبیر خوابو هم نکرد عجیب تعبیری کرد به نگام تعبیر خواب راحکار داد تذرعون سبع سنین دعوان که هفت سال کار میکنید شما و در این هفت سال کار میکنید فضروفی سنگولی و آن چیزی که کردین ها رو داخل خوشها بذاری الا قلیل من تاکلون این چیزی که میخواد بیرون میکنی برای خوردن تو اونها باشه بیشتر از اینها نباشن این نقطه نکته بعدی هست. علاما می‌فرمایند که اگر از یک عالمی سوالی پرسیده شود از هر انسانی که در اون فن توانمند بود، غیر از اینکه جواب سوال میده، باید راهکار درست هم ارائه بکند. کسی نیاد میگه مشکلی دارم، مصیبت دارم، جواب سوالش بده، اما در ضمن راهکار هم برای نجاتش بده. این هست کار درست. حضرت یوسف علیه سرات و سلام تنها بر تعبیر خواب اکتفاق نکرد تعبیر فرمودن حالا راهکار چیه چگونه از این مخمسه از این مصیبت عظمه چگونه بیرون بی هر را راهکار داد و مصیبت داری قرار بیاید. اون هفت سال خوشصالیه اما قبل از اون هفت سال آبادی هست در این هفت سال اول کار میکنید تلاش میکنید کنی کشاورزی می کنی این هر جماوری می نگهداری نگه الا قَلِيلَ مِمَّا تَعْكُلُونَ الا همون چیزای مختصری که اونها رو میخورید اونها رو میتونی صاف کنید و به غیر و دوائی داخل خوشها بذارید چرا اینجوری فرمودن؟ اینجا یوسف علیه صلات و السلام یک تندیر راهکار دار اول راهکار اول در مورد راه نجات از قحط هست و راهکار دوم حفظ ازوغی هست حالا راهکار داری میده اما کار هم بکنم. حدث اصلی نجات از اون خوشصالی هفت سال بعدی هست هم پس راهکار بیاد و هم حفظی از باید میشه تا اون هفت سال بعد بتونن اونا دوام بیاورن اینجا این هست علم نبوبت فرمودن خوشه ها رو از دانه ها از خوشه ها بیرون نمی کنیم چون اگر خود دانه از خوشه بیرون بشه زود این رو کیر میخوره یا مرچه ها رو میخورن به خاطره جلوگیری از آفات بعضی میگن که الله معلوسی معتقد است که خود مثلا گندم مصر دو سال میشه دوام نمی آور اگر بیرون میشون اما در کل این هست که اگر داخل خوشه باشه این در چون در غلاف، در خوشه خودش است. در غلاف خوشه ها قرار داره از آفات بیرونی در امان است. آفات بیرونی تأثیر گذار نیست به خوابی فرمودن که برای نجات از آفات باید در خوشها مگر انداز نیاز حالا آسیا می پاک می و اینها رو استفاده می کنی. این علم بیشتری حضرت یوسف اینجا داد. وقت به این صورت داره میدهن تعبیر می اول او تعبیر راهکار هم میدهند. این علم را بیشتر نمایان همی چقدر این دانشمن و فهمی که هم راه تعبیر هم راهکار و هم حفظ آزوغه داره برای ما تعلیم می وقتی که اینجوری فرمودن و حضرت یوسو علیه السلام و ها فرمودن بعد فرمودن که بعد از اون دوباره می آید چه می آید شداد هفت سال سخت می آید یا کل و قدمتون حالا می اون هفت سال بعدی اون چیزی قبلش ما آماده کرد این همیر می خورن این هر تمامی حالش حالا شما حسب نیاز. بیرو می کنید الا قلیل من ما تحسنون مگر اون چیز تخمی که برای آبادی بعدی نیاز داری بس تخمها رو بذاری برکشاوردی بعد اما الباقی رو حسنی ها حالت صاف کنید و آسیاب کنی و مورد استفاده قرار بدهید اول فرمودن که بعد از اون ادامه داد تمام نیست خواب حضرت یوسف تعبیر حضرت یوسف علیه صلی بعد از اون ادامه داد که بعد از اون هفت سال خوش سالی دوباره هم سال بعدی می سال بعدی که می سم یکن بعد ذالک عامون دوغا سفیه الناس که اون سال بعدیت مردم باران داده میشم شم آبادی می آیده و در اون و فیه عصیرون مردم دیگه. دیگه می خورن و نوشیدنی می گیرن آمیوهار می گیرن از انگور شراب درست می کنن زیتون فراوام میشه شه زررت فراوام و اون مشکل قهر برداشته میشه. پس اینجا حضرت یوسف که در یک جمله کوچه فقط چند جمله اشخاص فرمودم اما بابی از علم را باز کردم چقدر از معلومات را برای مثریان ارائه دادم تعبیر خواه فرمودم راه نجات فرمودم مشکلات تخصیم اونها رو فرمودم و بعد از اون حفظ اموالو را فرمودم و بعد اون نگرانی اونها رو برطرف کردند. که بعد از اون دیگه مشکلات بر طرح میشه بعضی میگن که ابتدای خوصالی زمانی میشه وقتی غذا برای دو نفر درست میشه اونا میخورند و و نصف و اما اگر هر گاهی غذا همه یک نفری خورد یعنی خوصالی شروع شده. این قحی میآید این قدر علامتی نیست باران نمیه گای باران هست مرکت نیست. باران هست اما اون میجات درختها ها اون میوه کولی نمیدم. در خود میوهات کمی باران بارن زیاده اما درختان سمر نمیدن باران زیاد، اما آب جمع نمیشه خوشصالی برطرف نمیشه حالا به هر حال اینجا حضرت یوسف علیه و صلی این همه راهکارها رو گفت و بعد اونها رو از اون نگرانی میرون کرد یعنی اینجا خبر دا از آینده که بعد از اون که خواب پادشاه تا همینجا بود که هفتا گاو و هفتا و الاغر و چاق با خوشهای های گندوم که سبز خشک بودن آن در قسمت بعدی که سمیت من بازال کامون سال بعد می آید که مردم باران دادی میشن و فی یعصیرون از دو می بجا استفاده میکنم این در خواب نبود این حضرت یوسف بنابر واحی فرمودند. علم واحی گفتن که یعنی اونها به اصفاد درستونه من پیغمبر الله رب العالمینم و موقعیت حضرت یوسف علیه سلاط و بیشتر در قلبونها نفوذ بیکن حالا این داستان گوش کرد و آمد پیش پادشاه و در پادشاه خواب تعبیر خواب حضرت یوسف انتقال داد وقتی که انتقال داد وقال ملک اتونی بهی حالا پادشاه قد برید این شخص بیارید این کسی که خواب تعبیر کرد پادشاں باور شد خواب به همین صورته تعبیر کر پادشاں عاقل بود فهمید و فهمید که خواب تعبیر شمینه فورا حضرت یوسف علیہ السلام را طلب کردند یوسف بیاری تا آزا بیشه اینجا وقتی حضرت یوسف علیہ السلام دوباره قاصد اومد قاصد بعد اومد پیش حضرت یوسف علیہ السلام و, سلام. و لما جاءه الرسول قاصد اومد که پادشایت رو فراق آزادی بری بکونه با حضرت یوسف علیه السلام دیگه اینجا ندوید که برن بیرون از زندان دوازده سال اون مکافات زندان خسته کرده بود حضرت یوسف علیه السلام را اما این خستگی دوازده ساله به این راحتی حضرت یوسف نره بیرون بای فرمودن تیم فرج الى ربی قالرج الى ربی فسألو ما بال سواطلتی قطط الیهن نه؟ برت پیشی با پیش آقاید بر پیش آقاید فصل همش ازش بپرسه ما بالو چه حس داستان خانم که قطعنا الی چرا اونها حد دست کردن؟ از اونها سوالی پرس چرا دست حاقت شدم؟ این که من از زندان نمیآیم بیرون؟ حضرت یوب علیه حصلات و صلاح علتی که بیرون آمداد باید فرمودن که این رب بی قیده ان علیم پروردگار من از کید و هیلیون آخ با خبره اینجا حضرت یوسف علیه السلام چرا زود بیرون در حالی که حدیث داریم که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم فرمودن که اگر فرمودن که حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا از الله تغاظا فرمو دن که خدایی نهارو من میخم ببینم که کیف توحیی الموتا و حضرت ابراهیم جوری فرمو در حالی که ابراهیم خیلی انسان بزرگ تایید کردن آخه فرمونه که لا لبستو ما یوسف لأجبتو داعیه اگر من به انداز یوسف در زندان میماندم فوراً گفت بیرون من میرفتم بیرون بعد در حدیث دیگر اومده که نبی خیلی جای تعجب هست از یوسف یعنی یوسف که قدر انسان بزرگی هست که وقتی که قاسد اومد برای آزادی یوسف علیه السلام و سلیم میتونست که بگه که من نمیرم به شرط تعبیر خواب میکنم وقتی تعبیر خواب مده بود به شرط تعبیر میکنم که منو بیرون کنی اما این شرط هم نگذاشت بعد از از دوازده سال خسته شده بوده و حکم آزادی رسید باز ها نرخ بیرون فرمودن که برو بپرس قالر جیم برگر بپرس که ما بال الاتی قطعن عیدیهن تاستان داستان ها چرا چه دستان رو قد کردن رب ان رب بخیدهن علیم پروردگار مهیل اونها رو میدونن. یعنی حضرت یوسف علیه صلات چرا بیرون اومم اینجا ندی مکرم اسلام تعریف کرد از یوسف از بزرگی یوسف چقدر این یوسف بزرگ بوده و فرمودن که اینجاست شکست نفسی کرده من میرفتم بیرون اما یوسف صبر کردن یعنی این است نبی کریم دارن چیز دیگر تعلیم میده اگر کسی را از زندان فرا خانن به بیرون اول برو بیرون بعد مشکل حل بکن چرا شاید بار پشیمان بشه بیرون نمیکنم اما یوسف علیه الصلا و السلام اینقدر دار نفس کریمی بود اینقدر بزرگ بود که دوازده سال مشاقات زندان او رو خستی نکرده بود و فرمودن تا زمانی پاک نشده هم نمیدم حالا چرا خاص پاک میشه؟ علت چی بود؟ علت این بود که یوسف علیه السلام یک نبی مرسل هست یک نبی مرسل نبی هستی داره بطرف قومی فرستادی میشه و اگر خود را تبریع نمی کرد و بیرو میره یعنی چی؟ یعنی یوسف با مننت پادشاه رفتی بیرون و مننت پادشاه بر یوسف میمان و این که من بی گناه بودن ثابت نمیشون اما اگر بی گناهی ثابت بشه مقام میر بالا تر کا این کی اصلا گناه نداشته این همسال موروث داخل زندان کردیم اونها قائل میرن مقام اونها پایین تر میره همیشه در وجود خودشون در مقابل یوسف احساس شرمندگی میکنن این حکمت بزرگی اگر اون جوره بیرونی یعنی اونها بر یوسف منت داشتن اما وقتی اینجوری بیرون اومد گفت نه تا زمانی تحقیق نکردی من بیرون نمی آیم اینجا یوسف بر اونها مننت گذاشت یعنی یک عمر در بین اونها با خیلی کرامت بالا زندگی میکرد که من اینجوری دارم زندگی میکنم که یعنی هرگز روی من منتی نباشه که فکر میکنین من حالا با مننت شما بیرون اومدم این که درس اولش این بود علت بعدی علت بعدی این بود که حضرت یوسف علیه السلام نره بیرون بخاطر این که اگر اینجوری میره بیرون و خود را تبری نمی کردن در این صورت مشکل بعدی این بود که پادشاه اگر بعدها از این داستان متلمی شده بر یوسف علیه السلام شد در قلبش این حیوم و یک بدگمانی در دل می رفت و اگر در دل پادشاه نصده به پیغمبری بعد دومانی بی آید و مسلمان می شد تواه می شود. این اثرات منفی بودن که بر پادشاه می و حضرت یوسو علیه السلام برای تراحوم بر پادشاه این چیزو فرمودن، برای تراحوم فرمودن که من بیرون نمی آیم تا کامل بعدها این ضربه نخوره. مانند وحشی وقتی که مسلمان شد و حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه به شخ اما نبی کلی فرمودن که اسلامت قبول اما دوباره جلوی من حاضر نشه دوباره خود من نشان نده چرا؟ چون که نطاق نبی مکرم اسلام او را میدید و یاد حضرت حمزه می افتاد یک موج منفی از قلب بیرون می میشه دردی بر میخواست اون دردی از قلب بیرون می میشه اونو را داغور اونو از را از بین میبور بخاطرین نبی مکرم اسلام فرمودن وحشید دوباره جلوی من اسلام تو پذیروب تو اما جرومان دیگه حاضر نشروب اینجا حضرت یوسف علیه السلام خاص که اول پادشاه رو نجاز از دو مشکلاتی بعدها در ایمانش امکان داره خاطر بدگوانی بر پیغمبر ایجاد میشه و علت سیغم این بود که حضرت یوسف علیه السلام باید تبرعه می کن و کسانی که نسبت یوسف بدگوان مدن شبهات و شایعاته باید از بین میبرد حالا از اینجای یک درس دیگری الله رب العالمین داره می دهند درس این است که هرگاه بر کسی اتهامی وارد شد بی خیال از کنار اتهام نباید امور کرد باید از خود دفاع کرد دفاع کردن از خود بر رفع اتهام این شیوه پیغمبرانه است چون اگر اتهام اومد و دفاع نکردیم مجرم انسان ثابت می شه. اون حیا و عزت و کرامت انسان از بین میره خاطر حفظ اون کرامت بزرگ انسانیت باید کار کنه خود را تبریعه بکنه حالا حضرت حسو علیه صلی و السلام خود را تبریعه کر چون با باید اون کار رسالت را انجام میدن و تبریعه بیشه تاکی بتونه در مسیر خودش موفق باشه و بعد این است که همین کار رو حضرت ایسا کرد وقتی که برای مادرش دخومت وارش شد اللہ رب العالمین تبرعی حضرت عیسی را بر زبان عیسی جاری کرد مریم متحم شد اللہ رب العالمین از, از یک نوزا در جاواری حالا تبرعیش اعلان فرمودند فراللہ رب العالمین نمیزدر اللہ بود خود تو آلوده برجلو چونکہ آلودگی باشه. اینجا برای انسان دیگه شد موقعیتی باقی نمیمانند نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله کارو کردم بر نبی بر حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت اومد در مسجد و نبی داخل حدیث صحیح بخاری می آید در مسجد و نبی بالای منبر تشریح بردم فرمودند که من يعذرنی من يعذرنی کی حال منو معذور میدودن در مورد کسانی که در مورد خانواده من تهمت زده اند در حالی کسی که داره متهم میشه او اصلا در مورد آن من خیر می دونم هر دید داخل خونه من تنها نرفته این جن نبی مکرم اسلام برای تبریه بالا منبر تشریف بردم والا رب العالم بعدها آیات نازل کردم یه جای دیگر داخل صحیح بخاری داریم وقتی که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم اموارو تقسیمی کردم یه شخصی آمد چگو؟ گفت ای دلیا محمده محمد عادل بکن شخصی شنید به نبی تری خبر داد نبی مکرس رنگش پرین ناراحت شد سخ شد تا که وی لک وای بر تو شما داریم من میگه عادل بکن در حالی برای خبرهای آسمان می آیم اونها منو امین می دونم تو داریم میگه عادل بکن خالد گفت یا رسول الله گردنشو نزنم گفت نه نگذنگردن شد. تا مردم بعدها میگن که محمد یارا خودشو میگوشه. به معنی که پشت کردند، ترکودند یا خروج من زیزی هزا قوم یا قرآن القرآن ولا يخرجوا حنجرهم. از نسل آقا این آقا آمی میآیند که اینها قرآن رو بخونن قرآن از حنجرها بیرون نمی رود. اشاره به خوارج، اون کسانی که همیشه فقط حرفشون قرآن هست به قرآن عمل کنن یعنی از خود همین آقا یک بی ادبی نسبت به پیغمبر کرد در دنیا نسلش تباه شد خودش از بین رفت این سمر بی هست است و بعد از اون بانی بدترین فکر در عالم شد این فکر تکفیر از همونجا است این تکفیری های که روز ای همه دارف مردمی این همه داره فقط کسین مردم میکشند اینها از نسل همونها هستند اینجا نبی و اسلام فورا تبرئه کرده. یه جای در قناعیم هنین وقتی که در غزوه هنین فتح شد و قناعیم در جیران جمع شدن و نبی مکرم اسلام به هر نفری ست تاشطور انایت می کردن یه شخصی چه یه شخصی گو که شمشیرهای های ما داره انو از خونه همین ها می شکن از این در مکه مثلا ما شدن امروز داره این هر نفر از اونا ها طور میگیره میره یعنی چیزی نمناسبه اونجا بعدی گفتن نبی مکرم سلام صلی عليه علیه وسلم برای تبریع کردن و رفع این سوی تفاهم ها همه رو او ما ها المقاله بلغنی ام کن چی خبر است؟ از این خبرات دارم می رسند که می که محمد صلی اللہ علیه وسلم داری رو بیشتر میده. بعض با اگر راضی می حالا من تقسیم کردیم خونه ها دادیم. اگر شما راضی نیستی، پس بیا خبر بدید از اموال غنیمت بعدی که برسه حق شما را پرداخت میکنم. همه اونها گفتیم ما راضی هستیم. بعد از او نبی مکرری اسلام فرموده که علاَ تردونا، به يرج الناس بالشاي والبَير وترجعونا برسول الله لرحالكم. اگر راضی نیستید مردم باقی و گزفن به خونه هاشون بر بگردند و برند. و اما شما با رسول الله برمی گردی خونه هایتون بهتره رسول الله بهتر یا مال دنیا بهتره نبی داره باشوان مدینه میآیند اینا دارن با به مکه برمی گردن همین گریه کردن و سرها رو پایین گرفتن گفتن که ما بیشتر طاقت نداریم ادامه نده پس اینجا هم نبی مکرر اسلام تبرعه رو اعلام کردن پس اگر بر کسی تهمت واقع شد پس این است که باید تا خود رو تبریه نکرده نباید کود هم حویان تبریه بکنه دلائل شد بیاوره تا رفی اتحام میشه تاوتونه با عزت از و شرافت زندگی بکنه اینجا حضرت يوسف این دست داد که دا نه من بیرون نمی آین باید اول منو تبریه بکنید و بعد همین داستان که حضرت يوسف دارم میبین ما با نسبتی قطع ایدی نه. ی درس دیگر الله دارم میدهند. درس بعد این است که یوسف علیه السلام قطعا پاک بود و هیچ از غلطی به ذرای خواد در دلش پیدا نشده بود هیچ اقدام از یوسف علیه السلام اونجا نشده بود اگر پاک نمی بود با این قاطعانه و قطعیت برخورد نمی که خیلی قط خیل قطعی برخورد کرد و خیلی با گفت نه اول تکلیف روشن کنی چرا اینها روی من اومدن پس اینکه خود این میرے یوسف علیہ السلام خیلی پاک بود اگر پاک نمی بود می ترسید چیز جا اصرار فاش نشند ذلخا اطرافی نکره حرفی درست گفت نا نا اول پاکی من باید اثبات درسه مسئله بعدی اینجا یوسف علیہ السلام اونجا خطاب کا بقاثر برو پیش آقایت ازش بپرس ما با لصوت اللتی قطعنا تانا ایدی چرا خانوم ها دستقات کرده اینجا چرا حضرت یوسف اسم زلیخا رو نگریف و کل جورب را بخانوم های بادی چهیل خانوم بادی این ایک سوالی هست ده حالی که بزرگتری مسیبت ها بزرگتری مسیبت ها از دست زلیخا بودن اما چرا اینجا زلیخا رو رو نگریف این چند علت داره علت اول این زندانی امروز به زندان رفت کار همین خانوم ها از گرچه حضر حضرت یوسف را فرستاد، اما اینها تایید کرده هم و حضرت یوسف هنجا چه گفتم برای اون گفته که رب سجن و حبد الیه من ما الیه بار زندان از دعوتی این دعوتی خانوم ها بهتره این خانوم دارن دعوت میدهند که برای فساد این کل خانوم ها جمع شدن تو کار کردن یک نیو سفر طرف خودشها مایل کنند دو تایید کردن جناهات زلک خارم پس تایید کننده در جور شریک جرم میشه اگر کسی جور می کرد و شخص دیگر تاییدش کرد در غرما مسابی میشن پس اینها در غرما مسابی بودن و خاطری هدف توی سؤال اهل سلطان و سراغ فرموده این خانوها باید اینجا تکلیف انها روشن شنیشه شن چه این کارو کرده و املت بعدی این بود که زلیخا دیگه محسنش بود احسان کرده بود و احترام زلیخا رو نگه داشت نخواست که اسرار زلیخا رو فاش بکنه خاص وگه همین اتبریه بشه اینجا چون خود خانوم ها همین خانوم ها بودن که تهمت را شایی کرده بودن علا از همین اخ ثابت میشه از خود نخو از زلیخا هم ثابت میشه وقتی که به این صورت بود و پادشاه رو وادار کردن برای داستان حالا دوباره قاص سے اعلی چون قاص آمد پیچھے بادشاہ تنوز حضرت یوسف علیہ الصلات و سلام از زندان بیرون نہ آمد ہن تو اقل زندان نشاستے اول بعد انہا رو تکلیف انہا روشن ویسے بادشاہ انہا رو فراخان قال ما خطب كنا اذ و تن یوسف عن نفسے اچھائی قال کیا دسوا صرا یوسف را برای خود تر آمدی کہہ دے نگاہ هم همون لفظون ما, ما خطب خط بکنن اضرابتن یوسف عن نفسه چرا شبه یوسف را برای خود مرابده کردی برای آماده کردنش پس گویا ای هم این مراوده اصد خانوم برای فساد صورت گرفته بود. اما یوسف علیه سلات و سلام کامل پاک بود وقتی که انهار و فراخم در یک تالار انهار و تمام خانوم های اشراف منجا ظاهر شدم بعد هم گفتند که شما دستهار و کار کردی، کارو کردی؟ انجام شی گفت خانوا، قول نه حاشاالله. اون جا چی گفت؟ حاشاالله ما هزبش را این هزیله ملكون کریم. اونجا پاکیزه و ایدار این پا این انسان معمولی نیست، این بیگنا آلوده نیست. وجود او وجود ملکی هست، فرشتهایی هست. اینجا هم همون چیز رو گفتند، حاشاالله که نه یوسف پاکی، اونجا اونجا هم دیریم. اینجا هم میگی یوسف پاکی و هیچ گناهی در یوسف علیه السلام متوجه نمیشه همه این خانم در جل پادشاه این اعتراف را کردن و پاکی یوسف علیه السلام را گواهی دادن چلورس انجلوتا ادامه دادم ما علمنا علیه منسوب ما در مورد یوسف هیچ بدی نمیبینیم یوسف بد نکرده بد نبوده و هیچ گناهی یوسف نکرده هیچ اراده غلط در یوسف نبوده کامل پاک است پس اگر کسی پاکی کسی را میدونه حق همین است که باید کار کرده اونجا گواهی بدهد و حق را باید اونجا ثابت و اینها همین کارو کرده میگه یک شخص یک روزی یک خانمی در زمانهای قدیم احسن استاد جلوتان یک خانمی رفت پیش قاضی مدعی شد این آقا مهريه منو نميدهد مهريه منو نميدهد پیش قاضی را در نقاب بود حجاب بود قاضی گفت به خانوم که انا مدهی خانوم بود آقا مهریه نمیده و مهریه شان گفته بود قاضی گفت صورت بردار نقاب بر بدار تا من تو ببینم و گواهام دا وایبه تو زنه شستی وقتی این حکم هست باید همین جوری هم باشه پیش قاضی باید چهره بیرون بشن و الا که بیرون تا ببینم آقا گفت که نه شهرش بیرون نکن هرچی چی میگه من تصدیق میکنم این مردی بود نه برده دادگاه و این قانون هم مدعی هست داره اینجا آقا رو پیش قاضی برده اما مرد مرد هست دیگه مرد بود و مردانگی کرد به قاضی و هر چیزی که این داره مطالبه میکنه من قبول دارم اما کشف هجابش نکن خانم وقتی که دید این آقا این مرد هست گفتن که منم ادعایی ندارم بخشید برو حالا تو این کار برای من کردی من هم این کا برای تو میکنم. کنم حالا بخشید خاطر یک مردانگی اون پرونده کلا خابید اینجا خانوما خانوما که داخل درباری پادشاه بودن چی گفتن خاش الله ما علمنا علیه من ما هیچ بدی دند برد یوسف علیه الصلا و سلام ما نمیدانیم وقتی اینجوری گفتن زلیخا اونجا بود بین خانوما بود بعد ذليخا گفت كه قالت امراۃ العزيز الآن حس حصل الحق حالا همسر ذليخ همسر عزیز میس حالا گفت كه باله وقت حق ظاهر شد و واقعيت برملا شد انا راوتت هو النفسه من با عمرابده كردم من بودم كه او را به فساد دادم او نبود و انه لمن الصادقين او يوسف از صادقین از پاکان و نیکان هست. اینجا هم زلیخا وقتی اینجا دید, دید که حق ثابت شد، پاکی یوسف ثابت شد، این اش به این اش واقعی زلیخا. این قادر شیفته و فریفته بوده. یا چند کار کرد. اول اونجا هم وقتی که از مصر یوسف را دید، اونجا چیکرد؟ این یوسف نه او علیم. یا زندان یا عذاب. یه نگو را بکشید صری بعد در محضر خانواده هم چی گفت گو الا الا ان یفالم امره علی اس جناننا اگر خارق میگه ان نکرد باز زندان میشه یا که سوو کشی پیران این داخل زندان هم رفت باز یوسف را حلاق یوسف را ان را این اش بود نحاس یوسفرا حلق بکوره یوسفرا از دست بده اینجا هم دوباره اعتراف کرد اینجا وقتی همه گفتن یوسف باکه اینجا نحاسته ندائی از زلیخا برخواست و زلیخا دا داد دا کشید که الان حس حس حق حق ظاهر شده انا رابطو عن نفسی که من او را مرابط کردم برای فصاد و انهو لمن الصادقین این پاکه اینجا هم این گواهی دیگر بر حضرت یوسف که یوسف اونجا هیچ حرکتی در مقابل زلیخا نکردی بود فقط حرکت یوسف حرکت صادقانه و فرار از داستان بود این بخاطر رفت الله رب العالمین چندی جا این جای دلیخان میگه الان قد حس حصل الان حس حصل حق حق ظاهر شده انا را اونجا هم گفت که در مواقع خوندی انا را ود تو من اونو مراوده کرده اما انجام نداد. اینجا هم دوباره مقصیه و دوباره میگی. اینجا رد ازیم مشت موحکمی هست برده اون یافته هایی که اسمت انبیا زیر سوال میبرم. اما یوسف علیه السلام اعتراض کرده. الله رب العالمین در پاکیه اون مقام بزرگ یوسف علیه السلام را اینجا بیان می کنم حال اینجا زلیخه آمد این اعترافاتو کرد که نه یوسف پاک است و من ایکارو کردم چرا ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ای تائی ای که این نبیدانت که من در نهان و پنهان خیانتی نکردی ام این لا یهدی که دل خدا اون خائن را کید خائن را درست نمیکنه خائن هرگز به هدفش رسد حال این کلامو کی گفت اینجا که ذالک الیعلم ما که بدون اینکه ان لم اكون بالغیل من در پشت او خیانت نکردیم والله لیعد کید الخائنین و ان الله لیعد کید الخائنی این کلام حالکی بود اینجا بعضی میگن این کلام کلام حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام یوسف فرمودن که چجوری فرمودن؟ یوسف علیه الصلاۃ والسلام فرمودند که پس در اون عزیزی مصر اون بدونه که من در پشت تو هرگز خیانت نکردم من پاک بودم و الله رب العالمین خائن را دستگار نمی‌کنه یک معنا این هست معنی بعدی این است که این کلام کلام زوریخا و یائی که یوسف الله ربوده که الله بار الله لنس برشفو که من خواخ اما این جمله بعدی ضعیف خیلی ضعیف این نیست بعض میگن این کلام کلام زلیخا بود زلیخا گفت ذالک ليعلم طاب بدونه که من در غیاب او خیانت نکردم حالا کی بدونه دو معنا داره همسرم بدونه عزیز مصر بدونه من داره اعتراف میکنم شما فهمیدی که من لم اخونه بالغیاب من با برای در غیاب همسرم خیانت, خیانت همسر نکردم حالا افتغاز میشه خیانت کرد تا اونجا بور تا هب دروازون قفل کرد جوابش نست یعنی تا اونجا فقط در حد مراویده بود اما اون خیانتی که بر افتغیق ضربه بیاد این کار صورت نگرفت این یک معنی معنی, معنی بعدین است که زلیخا در پاکی یوسف حالا دیگه بیخواسته گفت که ذالک لیعلمه تا یوسف بدونه که ان لم اخونه بالغیل حالا یوسف اینجا نیست اما باز هم خیانت نمیکنم یوسف را متهم نمیکنم باز فاکی را, را باید میکنم، گرچه من اینجا ضربه بخورم و الله رب العالمین خائن را هرگز دستگار نمیکنه. این است که الله رب العالمین همیشه با متقین و صادقین ها و انهم من الصادقین قبلا فرمودند وان الله لا يهدی ال... که دلخوانی بعدها فرمودم صادق باشید نجات راستگاری هست و اگر انسان خائن باشه آقابت کار رسوائی هست که انجا حس حس الحق شد در خیانه حس حس الحق صورت می گیرم و بعد می که وما ابرو و نفسی این نفس به بسو کلام بعدی حالا تا که میگه وما ابرو و من تبریه نمی کن نفس خود را تر نفس انسان آدم هارو بسو فحشاد وات میده الله مارحم ربي ان ربي غفور و رحيم. حالی این جمله کی بکار بود اینجا؟ میگن اینکه آما ابر و نفسی ان نفس الاماراتون بسو این کلام مالی که بود. بعضی میگیرد این کلام کلامی حضرت یوسف بود و بعضی می این کلام کلامی بود اما اینجا یک بعضی معتقدن این کلام کلام زلیخا و ما ابری او اون نصی زلیخا بو چون که داستان از زلیخا داره میرسه و اینجا یوسف اینجا نیست یوسف اون داخل زندانه پس این چیزی کلا این سخرانی این حرفا رو زلیخا گفت که و ما ابری اون نصی ما خود تبرئه نمیکنم نفس انسان به طرف احشا دعوت میده، الا ما رحمات بی چیزی پروردگار بر اون رحم بکنم، اینجا دو معنا اگر جمله یسو علیه صلی اللہ و گفته باشن، معنی این است که یعنی نفس انسان به این چیز عمر میکنه، نفس انسان تمایل پیدا میکنه، و خواهش نفس پیدا میشیم، شن، اما اگر تروردگار نجات بده، نجات قطعاً هست و نفس در امام میمانه. مانه. اِلَّا مَا مگر چیزی پروردگار بار رحم کرده باشه ان رب غفور و رحیم جمله بعدی هست غفور و رحیم مانتی است این که یعنی انسان به تنهایی نمیتونه خودش را از دور بیرون بکنه مگر اینکه از الله رب العالمین در مقابل کید نفس و شیطان استعانت طلب بکنه از الله طلب بده خدایا من نجات بده بار اللها خیر شیطان از من بدار. بعد بدا انسان نمیتونه تناخود انسان حریف شیطان و حریف نفسش نمیشه چون قبلا گفتم که در وجود انسان دو چیز قرار میگیره یک انجام کار انگیزه برای گناه دو انگیزه برای ترک گنا. و واسه دو تا دو تا انگیزه با هم قرار میگیرن اینها هم همدیگرن و نمیتونن دیگر رو دفع بکنن و یک نیروی فراتر اینجا غالب بشه اون نیروی فراتر استعانت پروردگار است که الله رب العالمین رحم فرمایا به حال اللہ رب العالمین نبی نبیش را و سیدت بر زبان دشمنانش جاریکم اوناهایی که مرابره میخواستن بکنم و یوسف را قسم خورده بودن که لیستنن و لیکونن نمساقیریم یا زندان میکنیم یا رسوان میکنیم اللہ رب العالمین که کمیشه الله با حق هست و وقتی که حق باشه اونها رسوا شدن یوسف به اعزاد و شرافت خودش رسید پس کسی دنبال سو باشه در نامی رسوایی آدم باشه خودش رسوا است حقو هر کی باشه بادها به سوای همونهای گفتند که ما اینجا یوسف را رسوا می‌کنیم همونها گواهی دا برای رسوای خودشان و پاک یوسف علیه السلام والسلام الله رب العلی گاهی خوبی و طبرئه انسان‌ها را شهادت را از زبان دشمن می‌گیری اگر دشمن کسی برای پاکی کسی گواهی دا این علامت بزرگی اون شخص است اینجا دشمنان و مخالفان یوسف علیه الصلاة و السلام اون جواهر را دادند بس الله توفیق عمل نوای فرماید